عزیزان، آیا محل و زمان خاصی برای ملاقات با خدا در دعا دارین؟ خداوند ما شاگردانش رو تشویق می کرد که مرتباً دعا کنند و همینطور اونها رو تشویق می کرد که زمان و مکان خاصی رو برای دعا اختصاص بدن. در درس امروز معلم ما به ادامه تعالیم عیسی مسیح در موزه سرکو در مورد اهمیت طلبیدن جستجو کردن و کوبیدن خواهد پرداخت. قبل از اینکه بتونیم رفتن مهمی داشته باشیم یا به عبارت دیگه خدمتی برای ایسا شروع کنیم لازمی که آمدن معناداری به سوی عیسی مسیح داشته باشیم. به دقت به درس امروز گوش کنید تا یاد بگیریم شاگرد بهتری برای مسیح باشیم. بخواهید به شما داده خواهد شد. بجوید خواهید یافت بکوبید در به باز خواهد شد.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 پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند خواهد فرمود با دیگران همانطور رفتار کنید که می آنها با شما رفتار کنند این است خلاصه تورات و نوشته انبیا در ادامه مطابا به هفت عیسی تعالیم سر کوه را با نظرسنجی به پایان می بره. او این اولین گردهمایی مسیحیان رو با دعوت از شاگردان برای پیوستن به او در بالای کوه شروع میکنه تا بتونه به اونها تعلیمی بده که وقتی درد کنن و به کار بگیرن اونها رو نمک روی زمین و نور جهان و بخشی از پاسخ و راه حل او برای تمام مشکلات مردم پای کوه بکنه ما دیدیم که در بالای کوه عیسی به شاگردانش که با او ملاقات کردند و او میخواست اونها رو تعلیم بده تا بخشی از راه حلها و جوابهای او باشند، اینطور گفت اولا به درون نگاه کنند و ببینند که آیا چه رفتارهایی هست که نباید در زندگی اونها باشه و اگر میخواهند بخشی از راه حلها و جوابهای او باشند چه رفتارهایی باید در زندگیشون باشه تا بتونن نور و نمک این دنیا باشند خوشاب حالها باعث شد که شاگردان و ما به طور کاربردی به درون نگاه کنیم در این تعلیم عیسی به اونها نصیحت کرد که به درون به اطراف و به بالا نگاه کنند وقتی در نخستین پاراگراف باب هفت موعظهش رو به پایان میبره به اونها میگه حالا متعهد باشید که به درون نگاه کنید شما تا خودتان جواب رو نداشته باشید نمیتونید برای اون مردم جواب باشید اگر خودتان نجات نداشته باشید نمیتونید دیگران رو نجات بدید میگن وقتی مبشر بزرگ انگلیسی جان وسلی ها پیش به جورجیای آمریکا رفت هنوز تبدیل نشده بود او ایماندار و پیرو ایسا بود اما تولد تازه رو تجربه نکرده بود. جان وسللی بعدها می گفت، اونقدر به تاریخ تولد روحانیش علاقمند شده بود که هر جا میرفته درباره تولد تازه معیزه می کرده و می گفته شما باید از نو متولد بشید او می گفت وقتی در جورجیا بوده و سعی می کرده سرخ پوستان رو نجات بده با خودش گفته بود من اومدم سرخ پوستان رو نجات بدم. اما چه کسی جان وسلی رو نجات خواهد داد. مردم می میگفتند آقای وسلی چرا همیشه توی موعظت میگی باید از نو متولد بشید؟ و او می میگفت چون باید از نو متولد بشید. تولد تازه اونقدر برای او مهم بود که او اون همیشه می کرد اما جان وسلی مثالی از این حقیقته که شما اگر خودتون نجات پیدا نکنید نمیتونید سرخ پوستان رو نجات بدید. و حالا این اظهارات نهایی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 اجازه بده پرکاه را از چشمت بیرون آورم در حالی که خود تو چوب بزرگی در چشم داری تعجب می کنم که چند نفر این پاراگراف مهم و تعلیم اون رو فراموش می کنن. مطمئنم داستان شبانی رو شنیدید که خادمی به نام جو توی کلیسا داشت او هر یک شنبه به شبان می گفت شبان موعزه عالی براشون کردی و شبان فکر می کرد نمیدونم جو که ادعا میکنه یک ایمان داره کی میخواد بفهمه که این معزه برای او هم بوده؟ در یکی از یک شنبه ها که هوا طوفانی بود و کسی جز او و خادم توی کلیسا نبودن شبان تصمیم گرفت هر طور شده کلیسا رو دو نفری تشکیل بدن پس اون دو با هم پرستش کردن و بعد شبان معزه عالی کرد و دعای برکت آخر رو انجام داد و اومد که از در پشتی خارج بشه جو دست او رو فشرد و گفت معزه عالی بود شبان خیلی بد شد که هیچ کس اینجا نبود تا بشنوه. من فکر کنم با این تمثیل پرکاه، اینجا عیسی میخواد به ما نشون بده که گاهی چقدر مزهک میشی او وقتی این مثال رو در ابتدای باب هفت میزنه و میگه چرا پرکاهی رو که در چشم برادرت هست میبینی ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی، یا چگونه گونه جرأت کنی به برادر خودت بگویی اجازه بده پرکاه را از چشمت بیرون آورم؟ در واقع به ما میگه فکر میکنی وظیفت اینه که پر کار رو از چشم دیگران بیرون بیاری و بعد عیسی گفت ای ریاکار من مطمئن نمو وقتی داشت اینو میگفت ای روی لب داشت و به اونا چشمک زده و گفته اولون چوب چوب بزرگ را از چشم خودت بیرون بیار و اون وقت درست خواهی دید که پر کار رو از چشم برادرت بیرون بیاری همونطور که در درس قبلی دیدیم او نگفته هرگز داوری نکنید بلکه گفته اول خودتون رو داوری کنید و بعد تجهیز بشید که برای کمک به برادرتون او رو داوری کنید. او در آیه آخر گفته در خدمت کردن به مردم بسیر باشید احتمالا منظورش مردم پای کوه بوده و می گفته که هر کسی برای هر چیزی آماده نیست به این دلیل که گفته آنچه مقدسه به سگان ندید و مرواریدهای خود رو جلوی خوک ها نریزید. من معتقدم که او در اونجا می گفت بسیر باشید شما باید داوری کنید کتاب مقدس به ما میگه زیر یوق نابرابر غیر ایمانداران نروید البته این در مورد ازدواج کاربورد داره ولی در مورد شراکت کاری هم کاربورد داره اگر داوری نکنید چطور میتونید از چنین تعلیمی در دوم قرنتیان 6 پیروی کنید اگه موضوع داوری در کتاب مقدس رو بخونید به این سادگی نیست که فقط بگه داوری نکنید زمانهایی هست که داوری نمی کنید مثل اول قرنتیان چهار که پولس رسول میگه من انگیزه قلب خودم رو نمیتونم پس تعجب می میکنم که تو از کجا میدونی که اونها چطور هستند در زمینه انگیزه های قلبی پولوس میگه تا وقتی خداوند بیاید داوری نکنید او انگیزه های مخفی دل رو روشن خواهد کرد و بعد مردم داوری خواهند شد در اولین پاراگراف باب هفت وقتی عیسی بحثش رو به پایان میرسونه میگه که متحد باشید که به درون نگاه کنید او در باب پنج در اولین بخش از گرد همایی خود به شاگردان نصیحت کرده که به درون نگاه کنند و حالا تعالیمش رو به پایان میرسونه و میگه باید به بالا نگاه کنی. او میگه اگه خودتون کمک دریافت نکنید نمیتونید به مردم پای کوه کمک کنید. شما نمیتونید اونها رو به جایی هدایت کنید که خودتون اونجا نبودید. اگه خودتون راه حلی نداشته باشید نمیتونید به اونها راه حلی بدید. اگر شما خودتون ارزش‌های روحانی نداشته باشید نمیتونید با دیگران از ارزش‌های روحانی صحبت کنید. در پاراگراف بعدی آیات 7 تا دوازده میتونید بگید عیسی پیغام خودش رو جمبندی میکنه عیسی میگه متحد باشید، به بالا نگاه کنید. او در این تعلیم خارق‌العاده به ما میگه به درون نگاه کنیم و ما رو نصیحت میکنه که به اطراف نگاه کنیم. حالا او میگه متحد باشید که به بالا نگاه کنید. شما نمیتونید بدون نگاه کردن به بالا به راه حل‌ها دست پیدا کنید. پس متحد باشید که به بالا نگاه کنید. اینها آیات زیبایی هستند اگر در زبان اصلی به اونها نگاه کنید اونها رو اینطور میبینید مرتبا به تلبید و دیر یا زود به شما داده خواهد شد. مرتبا بجوید خواهید یافت مرتبن به بکوبید و در به رویتان باز خواهد شد. چیزهای زیادی در کتاب مقدس هستند که بسیار ساده مثل بخشش گناهان در مورد بخشش گناهان گفتند کتاب مقدسون رو تعلیم میده من به اون باور دارم و این باور اون رو عملی میکنه. این نحوه تعامل با بخشش گناهان هست. و میشه اونو اینطور گفت: کتاب مقدس اون رو تعلیم میده من اون رو زیر سؤال می برم و باعث نیفتادن اون میشم. اما اگر واقعا به چیزی که کتاب مقدس در مورد بخشش گناهان میگه باور میکنید، خبر خوش انجیل این هست که عیسی بر صلیب به خاطر گناهان ما مرد، و اگر ما به گناهانمون اعتراف کنیم، خداوند به کلامش وفادار است و خون او ما را از هر ناراستی پاک خواهد کرد. حالا اگه به اول یوحنا یک نه باور دارید، او به آن عمل خواهد کرد. اون بسیار ساده است، مثل آب خوردنه، و هر کسی که باور کنه برای او کار خواهد کرد. اما هر چیزی توی کتاب مقدس به این سادگی ها هم نیست. شناخت خدا به اون سادگی نیست. نگاه به بالا مثل اون نیست. همینطور که در باب شش دیدیم بعضی انزباط روحانی هستند که به ما راهکار بر روش نگاه به بالا رو میدن. من فکر میکنم شما باید اون انزباط ها رو کسب کنید تا بتونید هر روز در زندگیتون به بالا نگاه کنید و اون چیزی که این میگه. کلمات به طلبید به و به کوبید در زبان یونانی در زمان حال استمراری هستند. پس ایسا نمیگه به فقط یا فقط یک بار بجوید و یک بار بکوبید او می که این باید عملی مستمر مداوم و با پشتکار باشه اما اینجا عد بزرگ هست. اگر شما در نگاه به بالا استقامت کنید اگر به بطلبید و بجوید و بکوبید در به رویتان گشوده خواهد شد و بعد اینجا وعده بزرگ هست. هر کسی که به روش درست به طلبع دریافت خواهد کرد هر کسی که به روش درست بجوید خواهد یافت و هر کسی که به روش درست بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد اینها وعدههایی با شکوه هستند اما قبل از اینکه بر روی آیه هشت تمرکز کنید باید بر آیه هفت متمرکز بشید باید این تداوم در طلبیدن جستن و کوبیدن وجود داشته باشه عیسی به ما تعلیم داده که دعا باید دعای مداوم و با پشتکار باشه او تعلیم داده که انسان همیشه باید دعا کنه نه سرسری، او این تعلیم رو به همراه مثال هایی داده که در اونها افراد سرسختی بودند بیوزنی بود که هر روز به خانه قاضی می آمد و قاضی بالاخره گفت من ترسی از خدا و توجهی به خلق ندارم اما این بیوزن مایه دردسر من شده و برای اینکه با اصرار و پافشاری خود مرا به سطوح نیاورد به داد او خواهم رسید و بعد به نظر میرسه کاربردش این باشه که خدا شبیه اون قاضی بی ادالت نیست. اما حتی اگر یک قاضی که عادل نیست و اهمیتی به خدا و مردم نمیده نیاز اون بیوه پیر رو به خاطر استقامت او برآورده میکنه آیا فکر نمیکنید خدا به دعای مستمر جواب خواهد داد؟ من معتقدم این تعلیم ای هست و دیدن اون در زمینه سر سرکوه یک جمبندی هست. عیسی این چیزها رو به رأی میذاره. او میگه گوش کن. متعهد باش که به بالا نگاه کنی چون هر کسی به بالا نگاه میکنه پیروز میشه اما فکر نکنید که اون چیز آسونیه اگر یک بار دعا کرده اید خدایا میخوام تو رو بشناسم فکر نکنید که این کفایت خواهد کرد او این مثال عظیم رو به کار میگیره و طبیعت گناهالود انسان رو به تصویر میکشه اونجا که میگه پس اگر شما که انسانهای های گناهکاری هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید؟ چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود. من فکر می‌کنم میتونید بگید چیزی که او اینجا اظهار می‌کنه اینه که متعهد باشید به بالا نگاه کنید. بعد در آیه 12 چیزی رو می‌بینید که به اون قانون طلایی می‌گیم. قانون طلایی چی هست؟ این قانون تلاییه. در متابا به هفت آیه دوازده او میگه با دیگران همانطور رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیاء. و یا در ترجمه دیگه میگه لحاظا آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز به همچنان کنید. زیرا این است تورات و صحف انبیا این به عنوان بزرگترین تعلیم اخلاقی در روابط انسانی مد نظر قرار گرفته. و اون چی تعلیم میده؟ اون اولا تعلیم میده که شما باید خودتون رو جای کس ای بذارید. من فکر می کنم این قسمت سخت این قانون طلایی هست گذاشتن خودتون جای کس دیگه. وقتی اون کار انجام دادید و انجامش کار آسونی نیست، از خودتون بپرسید اگه شما اون شخص دیگه باشید، الان دوست دارید طرف مقابل براتون چیکار کنه؟ وقتی جواب اون پیدا کردید، همون کارو بکنید. و این مجموعه شریعت و انبیا و کل کتاب مقدس برای مسائل اخلاقی هست. اخلاقیاتی که باید در روابط انسانی به کار گرفته بشن به عبارت دیگه عیسی میگه به پایین تپه نگاه کنید حالا تمام اون مردم رو اون پایین میبینید؟ مثلا بگیم شما یه مرد سیاه پوست هستید وقتی به پایین تپه نگاه میکنید کسانی رو میبینید که از نژادهای دیگه هستند. حالا به اون اینطور نگاه کنید خودتون رو به جای اون مرد بذارید. وارد پوست اون مرد بشید و از خودتون بپرسید اگر من به جای اون مرد بودم دلم میخواست چه اتفاقی برام بیفته و وقتی جواب اونو پیدا کردید همون کار رو انجام بدید چون اون قانون طلایی روابط انسانی هست به عبارت دیگه عیسی میگه ما باید متعهد بشیم که به اطراف نگاه کنیم البته این جاده ای دو طرفه هست به طور کاربردی وقتی به پایین تپه نگاه میکنید و زنی رو میبینید اون وقت اگه شما جای اون زن بودید دلتون میخواست مردان با شما چه رفتاری داشته باشن خب پس شما هم همون کار رو بکنید چون این قانون طلایی روابط محلی هست اگر به پایین تپه نگاه کنید و کسانی را از کشورهای دیگه یا های دیگه ببینید چی کار میکنید شاید اونها مشکلات وحشتناکی داشته باشن مشکلات اجتماعی مشکلات حکومتی فقر گرسنگی قحطی خودتون رو جای اونها بذارید از خودتون بپرسید اگه من جای اونها بودم، دلم میخواست مردم چه کمکی به من بکنن؟ دلم میخواست این افراد مرفه، ثروتمند و برکت یافته که پیرو عیسی مسیح هستند، برای من چی کار کنن؟ وقتی جوابش رو پیدا کردید، همون کار رو برای اونها بکنید. چون این قانون طلایی خدمت هست. همون کار رو بکنید. چون اون راهی برای نگاه کردن به اطراف و کاربرد تعالیم ایسا هست. البته وقتی به پایین تپه نگاه میکنید و کسانی رو میبینید که نجات نیافته اند، کسانی که معجزه نجات و تولد دوباره رو تجربه نکرده ایماندار نیستند و این حیات ابدی رو که عیسی آمد تا بده ندارند و کیفیت حیاتی رو که خدا میخواهد مردم داشته باشند ندارند، خودتون رو جای اونها قرار بدید. حالا همونطور که کتاب مقدس میگه اگر شما گم شده و توهی بودید، اگر بدنی داشتید که پر از تاریکی بود و بسیار درمانده و مزهک بودید اگر شما اونطور گم شده بودید دلتون میخواست ایماندارانی که به مسیح آمدهاند و آرامی و سلامتی در مسیح رو یافتن و پر از محبت و شادی و دیگر سمرات روح هستند برای شما به لحاظ روحانی چیکار کنند. وقتی جواب اون رو پیدا کردید همون کار رو بکنید چون اون قانون تلایی خدمت هست و باید مأموریت کلیسا باشه این هدف کلیه کلیسا هست. میگویند کلیسا تنها سازمانی در دنیا هست که برای منافع کسانی غیر از اعضای خودش وجود داره. از یک لحاظ این کاملاً حقیقت داره. یکی از اهداف بزرگ کلیسا اینه که وسیله‌ای برای خدمت باشه. هدف از وجود کلیسا این هست که تشکیلاتی برای خدمت باشه. این همون چیزیه که عیسی اینجا بر سر کوه تعلیم میده. او شاگردانی تازه استخدام میکنه و اونها مأموریت میده که بلافاصله به پایین تپه برند. و رسول او باشه یعنی اونها رو به عنوان خادمین یا میسیونرها میفرسته نهایتا بعد از اینکه سه سال اونها رو تعلیم میده چیزی رو به اونها میده که ما به اون معموریت بزرگ میگیم که طی اون به اونها میگه تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است پس بروید و همه ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه یه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم اون معموریت دو هزار سال پیش نوشته شده اون معموریت دوازده شاگرد بود اون دوازده شاگرد وقتی اون معموریت رو انجام دادن میبینیم که کلیسه به وجود اومدن ما باید به منشأ کلیسه برگردیم و اون رو در هدف خودش و شکل حقیقی خودش ببینیم و بفهمیم که مأموریت کلیسا همیشه مأموریت بزرگ بوده. معموریت بزرگ وظیفه کلیسا هست. دکتر رابرت اسگلوور مدتها قبل گفته ماننده هر سازمان دیگری کلیسا هم باید به وظایفش عمل کنه وگر نباید مأموریت رو رها کرده و خاموش بمونه. من با اون عقیده موافقم. به این دلیل وقتی عیسی این گرده همایی رو به پایان میبره، حالا به شاگردانش میگه متحد باشند که به درون نگاه کنند. افراد زیادی هستند که هرگز به درون نگاه نمی کنند. شاید اونها همان سگها و خوکها باشند که شما نباید مرواریدهای خودتون رو پیش اونها بندازید. چیزی رو که مقدس به اونها ندید. اونها هرگز به درون نگاه نخواهند کرد. اونها هرگز نیازشون به این چیزها رو درک نخواهند کرد. شما نمیتونید بدون بصیرت به هر کسی خدمت کنید اما باید متعهد باشید که شخصا به درون نگاه کنید و اول این تعالیم رو در خودتون به کار بگیرید و بعد اون رو در زندگی دیگران اعمال کنید پس وقتی عیسی تعالیم رو در باب هفت جنببندی میکنه او به همان ترتیبی که گردهمایی رو شروع کرده بود اونها رو تشویق میکنه و میگه حالا متعهد باشید که به درون نگاه کنید عیسی در باب شش اونها رو و ما رو تشویق کرده که به بالا نگاه کنیم و در نگاه به بالا بمانیم تا اینکه های روحانی و های روحانی رو داشته باشیم که حاصل نگاه به بالا هست او اینجا در مت 7 آیات 7 تا میگه حالا متحد باشید که به بالا نگاه کنید فقط باید به بالا نگاه کنید این نگاه باید نگاه مستمر باشه اون باید با پشتکار باشه اون باید با پافشاری باشه شما قبل از اینکه بتونید به دیگران خدمت کنید فقط میتونید به طور منظم و مداوم به خدا نگاه کنید پس در این آیات باشکو 7 تا 11 او میگه متحد باشید که به بالا نگاه کنید بعد در قانون طلایی آیه 12 میگه متحد باشید که به اطراف نگاه کنید از یک نظر تنها شخصی آماده نگاه کردن به اطراف هست و میتونه بخشی از جواب و راه حل او باشه که به درون و به بالا نگاه کرده اما تنها بعد از اینکه به درون نگاه کردید میتونید چیزها رو اونطور که باید دیده بشن ببینید و به اونها اعتراف کنید و به مسیح اعتماد کنید زیرا نه تنها بخشش آنها بلکه به خاطر تولد تازه است که ما مخلوقاتی جدید میشیم و دیگه از الگوهای قدیمی پیروی نمی کنیم ما باید به درون نگاه کنیم و باید به بالا نگاه کنیم تنها زمانی که ما نگاه مفیدی به درون و نگاه مفیدی به بالا داشتیم آماده میشیم که به اطراف نگاه کنیم الگویی هست که در تمامی زندگی های کتاب مقدس از اون طبعیت شده که من به اون آمدن و رفتن قوم خدا میگفت خادمین بزرگ خدا اولا پرستندگان بزرگ خدا هستند قبل از اینکه مردم مفید و مسمر سمر به سوی مسیح و به سوی خدا برند اونها باید توسط مسیح به طور مفید و مثمر سمر به سوی خدا بیان. تنها زمانی آمدن مفید و مثمر سمری خواهیم داشت که رفتن مفید و مثمر سمری داشته باشیم. به نظر میرسه این الگوییه که عیسی به وسیله اون اولین گردهمایی مسیحی رو به پایان میبره. او میگه که شما باید آمدنی به سوی خدا داشته باشید، شما باید به بالا نگاه کنید و در رسیدن به او پایداری کنید. شما باید بتلبید، بجوید و بکوبید تا به شما داده بشه، تا پیدا کنید تا در به رویتان باز بشه. بعد از اون شما آماده هستید که قانون طلایی رو به کار بگیرید. شما آماده هستید که متعهد باشید و اطرافتون نگاه کنید. اما باید این نگاه به درون و نگاه به بالا باشه که مربوط به آمدن خودتان به سوی خدا و مسیح است. این باید قبل از اینکه که رفتن این صورت بگیره اتفاق بیفته یکی از دلایلی که چرا رفتن ما به کلیساها این همه بی تأثیر هست، اینه که ما فقط میریم، ما واقعا قبل از اون نیومده ایم. دعوت در اولین گرده همایی مسیحی این بود. آمدن مفیدی به سوی مسیح داشته باشیم. وقتی می آییم، به بالا و به درون نگاه کنیم و بعد برویم. برای ایسای مسیح بروید و بخشی از راه حل و جواب او باشید. نمک روی زمین و نور جهان باشید. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند دوستان اگه تا حالا آمدن معناداری به سوی مسیح نداشتین اگه تا کنون زندگیتون رو به اون تسلیم نکردین لطفا امروز این کار بکنین ایسای مسیح میخواد شاگردان اون بخشی از راه حل اون باشن بخشی از جواب اون که برای نامیدان دنیا امید فراهم کنن. اگر قبلا آمدن معناداری به سوی مسیح داشتین، دای اینه که خدا از این درس ها استفاده کنه و شما رو آماده کنه تا برای اون برین. لطفاً ترتیبی بدین که در جلسه ی ای آینده با ما همراه باشید که جلسه آخر ما از این سری مخصوص در مورد معزه سرکو خواهد بود. حالا تا برنامه بعدی، امیدواریم خدای ما که فیض و رحمت می‌بخشه. شما را با دلگر پر کنه تا هر روزه خدمت به اون رو بطلبی